ساعتی بعد جماعت از گورستان برگشت دیگر با صدای بلند لا اله الا الله نمی گفتند طلب آمرزش نمی کردند شتابی در کارشان نبود آهسته و خسته می آمدند. از صدای پاهایشان معلوم بود همینطور از نجوایشان از بیرقبت حرف زدنشان اسحاق دکانش را باز کرد زنها برای بردن آب و شستن ظرف و ظروف بر سر چشمه آمدند اما دیگر به و به خندی در کار نبود. بیشتر صدای به همخوردن کاس کوزه ها شنیده میشد و نیز صدای بغزالود زنی که به شلوغی آنجا اعتراض میکرد. کرد. تا غروب لحظه های سختی را گذراند. کسی به آنجا نمی آمد. کسی آن در کنه و فرسوده را باز نمیکرد. او فراموش شده بود. غیر از سنا هیچ کس از وجودش در آنجا خبر نداشت. از سنا هم خبری نبود میدانست که آنجاست میدانست که گروس نو است. با این حال در همچنان بسته بود نمی توانست یک جا بماند راه می رفت رفته رفته سرعت گامهایش بیشتر می شد. راه می رفت و فکر می کرد راه می رفت و حرف می زد و همین راه رفتنها و رفت و های سری در آن انباری کوچک آرامش گنجش هایی را که برای خواب شبان روز از روزنه دیوار داخل می شدند برهم می زد. گاوچرانان ها گله هایشان را از صحرا آوردند. گاوی که زور با استشمام بوی خون پشت در جمع شده و با فریاد خود را روی سر گرفته بودند، باز هم به آنجا آمدند و شروع به ماه کشیدن کردند. اما گاوچرانان ها خیلی زود آنها را از پشت در راندند. همزمان با اذان اسرافین گله های گوسفند هم به ده رسیدند. صدای سم های تند و تیز گوسفندها و به بره ها از روزنه به داخل می آمد. زندگی شبانه شروع می شد. صدای تکبیر و سلامات از مسجد میآمد، وقت نماز بود. پیش خود شبستان را تصور میکرد که مردها زیر نور چراغهای زنبوری به نماز ایستاده بودند. از خستگی پشت سر هم دهندره میکردند و با صدای خوابالود الله و اکبر میگفتند. آرزو کرد کاش در شبستان بود و همراه آنها نماز میخواند. فکری به نظرش رسید. بافه ها را یکی یکی برداشت و بیخ دیوار روی هم گذاشت و بعد رفت روی آنها، و از آنجا توانست میدان ده را ببیند دو ستون نور هم را قطع کرده بودند نوری که از پنجره های شبستان میتابید و نور دیگری که از چارچوب آستانه در دکان اسحاق بیرون میزد سگ پیر جلوی در دکان خوابیده بود و سرش را گذاشته بود روی دستهایش و با کسی کاری نداشت دیگران هم ازیتش اذیتش نمی کردند. گاهی خفاشی به سرعت در پرتو چراغ های زنبوری قیقواج میرفت و پشهای را به نیش میگرفت و می درون تاریکی قره‌کیشی مثل همیشه نیم‌تنهیش را انداخته بود روی دوشش. از دوکان بیرون آمد، سیگار لای لبهایش میدرخشید. رفت و در وسط میدان ایستاد و رو به جاده چشم دوخت. در تاریکی تنها روشنایی سیگارش دیده میشد که گاهی لای انگوشتهایش بود و زمانی میان لبهایش معلوم بود که چشم به است. مرتب پا به پا شد و طبق عادت با تکان دادن شانههایش نیم‌تنهیش را جابجا جا کرد چند بار سرفه کرد و خلت سینه‌اش را با لذت به بیرون تف کرد. به نظرش قرقریشی موجودی شوم و شرور بود. یادش آمد که اولین روز سال چطور زن و بچه‌اش را کتک میزد و به آن دهان بیدندان و لثه‌های عنابی های چندشاور میکشید. احساس میکرد او حیوانی شبیه عقرب است که اگر به هر لحظه نیش میزند. حالا همان موجود شوم در سایه روشن میدان بنفشه در ایستاده بود و سیگار میکشید. گاهی پا به پا می شد و با صرفه های عصبی و پی در پی چرکاویسینهاش را بیرون می انداخت و باز به سیگار پک میزد. صدای موتور ماشینی در تاریکی شنیده شد. نزدیک می شد. چندی بعد ستون نور قوی به پنجره های شبستان تابید و نور زنبوری ها را کم فروح کرد. قره به آن طرف پا کشید. ماشین داخل میدان شد. ابتدا یک جیپ نظامی و پشت سرش هم کامیون بزرگی که چادر برزنتی رویش کشیده شده بود آمد. وسط میدان روبروی مسجد ایستادند. ابتدا سرنشینان جیب پیاده شدند، سپس چادر برزنتی از پشت سر کامیون بالا رفت و سربازهایی که تفنگ دستشان بود، یک به یک پایین پریدند و جلو کامیون آمدند و صف بستند. یک نفر به آنها دستور داد. او را شناخت. استوار بود. سربازها تفنگ‌هایشان را به سوی مسجد گرفتند. چند درجهدار دیگر همراهشان بودند. سرخان هم میان آنها بود. یک جا نمی نمیشد از پیش این درجه دار پیشانی یکی میرفت و روی پاشنه قدم کشید و دهانش را به گوش او نزدیک کرد و حرفی میزد و به سراغ دیگری میرفت با اشاره ی استوار راننده جیپ یک بلندگوی دستی از توی ماشین برداشت و به سرخان داد او به طرف نردبانی که به دیوار مسجد تکه داشت رفت و از آنجا خود را به بالای بام رساند بلندگو را روشن کرد صدای خشخش آن برخاست بعد صدای سرخوان شنیده شد سعی میکرد رسمی و با تحکم حرف بزند. اهالی بنفشه دره خوب گوشادون باز کنیم ببینیم چی میگم سرکار این بلنگو رو داده دستم تا صدام به گوش همه برسه. فردا کسی نیاد بگه من نشنیدم و از این حرفا. این بلنگو صدای منو به گوش کرا هم میرسونه چه برسه به شنوا. به فرمان سرکار استوار از این جای بلند و با صدای قوی به شما میگم همه اهالی کوچیک و بزرگ همین حالا باید توی میدان جلوی مسجد جمع بشن. هیچ پدر سخته ای نمیتونه بگه من نشنیدم و نیاد. توی بنفشه در یه قاتل قایم شده. اون امروز آدم کشته و کمر منو شکسته. سربازای قانون به فرماندهی استوار اومدان تا همین امشب اونو از سوراخش بیرون بکشن. حالا که این حرف رو از بلنگو شنیدین زود باشیم بیان به میدون زود. وقتی خواست از نردبان بیاید پایین، استوار گفت: برگرد همین حرفو رو به چهار طرف بگو." سرکر به یه طرف گفتم، میمونه سه طرف. خیلی خوب، سه طرف. قاتل باید امشب پیدا بشه. دهانه بلندگو را به سه سمت بنمشه گرفت و هر بار همان حرفها را پیش و پس با کم و زیاد زد. در این فاصله اسحاق در حالی که شیشه این نوشابه به دستش بود از دکان بیرون آمد و آن را به طرف استوار گرفت. بفرما، خونکه. غوار بیان که به اسحاق نگاه کند گلوی شیشه را چسبید و آن را بلند کرد و قولقللو ریخ توی دهانش و بعد پس داد. سرخان پایین آمد، استوار گفت: به این مسجدیا بگو امشب هرچی نماز خوندن و نخوندن دیگه بس کنن. تعطیله همه بیرون مومن و کافر. سرخان بلنگو را چسبان به دهانش و پیام استوار را به گوش های مسجد رساند کم کم مردم از چهارسوی روستا تک, تک یا دست جمعی مثل سایه های لرزان به میدان سرازیر شدند کپه کپه در پناه دیوارها و درون سایه ها به هم فشرده شدند استوار دستهایش را به پشت گره زده بود و مقابل آنها قدم میزد مردم آهسته پچپچ می کردند گاهی بچهی حراسان گریه میکرد و مادرش سعی می کرد چه زودتر صدای او را خاموش کند. پیرها در حالی که دست به دیوار میگرفتند سا زنان می آمدند در همین موقع سرکله سلطان هم پیدا شد. چراغ دوچرخهاش را روشن کرده بود و با هیجان رکاب میزد و با کمک روشنایی چراغ دوچرخه توی میدان چرخ میزد. و سوار شد. آهای بزغاله مگه اینجا میدون دوچرخه سواریه که دور گرفتی؟ زود باش بتمن یه گوشه تا دوچرخه‌ت رو کَلَلت نشیستم. سلطان کف پاهایش را با زمین مماس کرد و سرعت دوچرخه را گرفت و رفت پای دیوار عزیز ایستاد که از روزنه‌اش اسماعیل همه چیز را میدید. از شبستان مسجد چند نفر بیشتر بیرون نیامده بودند. اسوار بلندگو را جلو دهانش گرفت و گفت: آهای مسجدی‌ها هر چی نماز خوندین و نخوندین دیگه بسته. خودتونو به نشنیدن نزنین مردم معطل شما هستند. آنها هم پشت سر هم بیرون آمدند. تابش مستقیم و پر نور چراخ های کامیون چشم‌هایشان را میزد. ناچار دست‌هایشان را سایبان می‌کردند و پاکشان پیش مردم می‌رفتند. استوار ایستاد. اش را از کمر بیرون آورد، نوک آن را به آسمان گرفت و به سوی ستاره‌ها شلیک کرد. صدای گلوله میان دیوارهای کاهگلی پیچید. ابتدا بچه‌ها زده گریستند و جیغ کشیدند. به دنبال آن کلاخا و گنجشک‌هایی که روی شاخه درختان نزدیک ده خوابیده بودند، سراسیمه بلند شدند و کورمال کورمال در آسمان تاریک بال بال زدند بیتابانه در سیاهی شب دور خود چرخیدند و ناگزیر خود را به انبوه درختان دور دست کوبیدند تا شاخه بیابند و روی آن بنشینند این همه جانما زاب نکشیم بیان بیرون در همان حال صدای از توی شبستان بلند شد نمرود مل اون هم به آسمون تیر تا به خیال خودش خدا رو بزنه حالا تو هم میخوای خدا رو بزن یا هم مهمونهای خونشو؟ بزن؟ یکیشم من، بزن ببین خدایی که با نمرود اون کارو که چه بلایی ای سرت میاره، بزن. اسوار گفت، ملا مثل این که حرف آخرو رو تا همین اول زدی. گوش کن ببین چی میگم، من یه خدا بیشتر نمیشناسم اونم کسیه که سر ما حقوق اومیده و سرسال عیدیمو. اینم حرف آخر منه که اول زدم. حالا زود باش بیا بیرون. ملا از شبستان بیرون آمد. نور چراغ ماشین ها تابیده بود روی امامه و محاسن سفیدش. با سرعت خودش را به استوار رساند و سینه به سینهش ایستاد و سیلی محکمی به صورتش زد و گفت اینو زده تا یادت بمونه که تو مملکت قرآن از این غلط ها نکنی سکوت بر تاریکی میدان سایه انداخت تنها صدای شرشر چشمه شنیده میشد. استوار که دستش را روی صورتش گذاشته بود خطا به اطرافیانش و ببرینش اونجا به حسابش می رسن. اول درجهدارها دارها ریختن سر ملا اما او مقاومت کرد و همراهشان نرفت یکی از آنها امامهش را برداشت و دور گردنش حلقه زد و کشید اما ملا باز هم نرفت پاهایش را ستون کرد و تکان نخورد او را هل دادند و انداختند و در همان حال با امامه روی زمین کشیدند و به طرف کامیون بردند آنجا بلندش کردند و پرت کردند پشت ماشین زمزمه ها بلند شد اما حرف بود. نمفهوم متوجه نمیشد. باز هم صدای استوار به هم همهنها خاتمه داد حالا بریم خونه ها رو بگردیم از بالاده تا پایینده خونه های کنار با خونه های چسبیده به تپه همه رو سربازها دسته دسته شدند و هر دسته به فرمان یکی از گروهبانها به چهار طرف ده رفتند سرخان بیقرار بود یک بند نمی شد. به هر کس که می رسید چیزی می گفت اما بیشتر با قرکیشی حرف می زد دستور را به او میداد. اسحاق ای را از دکان بیرون آورد و گذاشت جله استوار بفرما بشین اینطوری زود خسته میشین استوار چهارپایه را کشید و گذاشت زیرش و نشست و با دو دست سرش را چسبید سرخان خودش را بالای سر او رساند و پرسید سرتون درد گرفت دردم بیشتر شد سرخان سرش را تکان داد و گفت من دلم میخواد بترکه استوار سرش را بلند کرد و با تعجب پرسید تو دیگه برای چی برای سفورا دیگه؟ آهان اسحاق با یک شیشه نوشابه دیگر ظاهر شده آن را به طرف اصطبار گرفت او کمی نگاهش کرد و بعد با دست زد و با عصبانیت گفت برشدار ببر میخواد منم مثل خودش آفتابه از دستم نیفته اسحاق به طرف دکان رفت تشتکی از روی زمین برداشت و گذاشت دهان شیشه و با نرمه دست چند ضربه به آن زد در شیشه بسته شد اصوار گاهی بلند می و مقابل مردمی که بلا تکلیف ایستاده بودند قدم می زد و باز می نشست. صدای گریه بچه ها و سرفه پیرها شنیده می شد. سرخان همچنان بیقرار بود. میرفت و می آمد. اسمایل از کارهای سر در آورد. ساعتی بعد سربازها دستخالی دست خالی برگشتند. اصوار عصبانی شده بود و با صدای بلند گفت من پیدا می کنم. قاتل تو همین ده قایم شده. صدای کفایت از میان مردم بلند شد. تو بنفشه دره هیچ وقت آدمی به اسم قاتل نبوده، من که والا تا به حال به گوشم نخورده. صدای خنده و پچ‌پچ‌های در گوشی بلند شد. اسوواری ایستاد و گفت: حالا میبینین اشاره کرد سربازها سوار شوند. وقتی خودش خواست سوار شود، مکسی کرد و گفت: قاتل نمیتونه از چنگ ما فرار کنه، همه ی راها بسته است. اول جیپ و پشت سر آن کامیون از ده خارج شدند. بوی بنزین خیلی زود فضا را نامطبور كرد مردم قرزنان میدان را ترک كردند از سرخان و قرهكیشی خبری نبود اسرافیل چراغهای شبستان را خاموش کرد اسحاق از فرصت استفاده كرد و با آفتابه به طرف خرابه رفت سکه از ترس صدای گلوله گم شده بود دوباره برگشت جای خود دراز کشید در آن حال صدای گریهی بلند شد اسرافیل بود موقع قفل کردن در مسجد گریهش گرفته بود وقتی اسحاق برگشت و, دید و گریه می کند گفت اسرافیل حالا چه وقت گریه است حالا وقت گریه نیست پس کی وقت گریه است دیدی که چطور ملامونو رو بیچاره مریض بود به خدا به زحمت نماز میخونه قصه نخور همه چیز درست میشه میخوری برات نوشابه باز کنم خدا پدرتو بیامرزه مثل اینکه دلت خوشه حالا حوصله نوشابه خوردن کجا بود برم خونه ببینم خدا چی میخواد از جلوه شبستان پیچی توی تاریکی کوچه، اسحاق وقتی سگ را جلو دوکان دید، آفتابه خالی را بالای سرش تکان داد و گفت هان، سر و کلت پیدا شد، حتما از ترس خودتو خیس کرده بودی سگ به ازولاتش کش و قوسی داد و نگاهش کرد اسحاق به طرف دوکان رفت و گفت من که خودم خراب کردم، چه برسه به تو که زبون بسته ای؟ با بسته شدن دوکان اسحاق میدان در تاریکی فرو رفت باز هم شرشور چشمه تنها صدایی بود که در میدان شنیده میشد فضا محزون شده بود بیشتر از هر جایی مسجد چنین حالتی داشت از در و دیوارش غم میبارید. به نظرش صدای مویه از آن میآمد صدای گریه دست جمعی عزاداران سپس صدای شیخ اسبی از آن سر بنفشه در برخاست بلند و رسا که سکوت شب را شکست یقین کرد که صدای اسب ملاست، بی قرار شد از روی چینه بافه ها پایین آمد، به طرف در رفت آن را هل داد از پشت بسته بود. دیگر نمی توانست آن چهار دیواری را تحمل کند. تصمیم گرفت از آنجا خارج شود اما در رویش بسته بود. آن را لمس کرد، چند بار تکان داد. قدیمی بود با چوب جنگل ساخته شده بود. در اطراف چشم دواند. بیل را برده بودند اما سشاخه آهنی که با آن علوفه و بافه ها را جابجا میکردند در گوشه افتاده بود. آن را برداشت و شروع به کندن دیوار بالای در کرد. کاهگل کهنه در برابر تیزی آهن زود تسلیم میشد و فرو میریخت. کتفش درد می گرفت. با این حال برای بیرون رفتن از آنجا چاره‌ای جز گشودن در نبود. یاد زربه های دیوانوار گوتاز به این در افتاده بود. او میخواست آن را بشکند و نتوانست. دیوار نرم و کاهگل پوک بود. چارچوب بالای در از پوشش دیوار بیرون آمد. بعد سمت چپ و راست آن را کند. دیوار خود به خود فرو میریخت زحمت زیادی نداشت. ساعتی بعد وقتی چارچوب را به طرف خود کشید در تاب نیاورد و خم شد و با صدایی لرزان از دیوار جدا شد. میان در و دیوار شکافی به وجود آمده بود که او می خود را مچاله کند و از آن بیرون برود. همین کار را هم کرد. بنفشه دره در خواب شبانه فرو رفته بود. به طرف خانه آنا به راه افتاد. به باریکه کوچه‌ای که به خانه آنا شد رسید. پاهایش سست شد، احساس کرد کوزه آبی سر راهش بر زمین قلتیده و آبان بیرون می ریزد صدای قلقل آب کوزه در گوشش می پیچید یاد اولین گذرش از این باریک راه افتاد که سفورا را دیده بود آن روز کوزه سفورا به زمین قلتید و آبان بیرون ریخت سلطان زودان را برداشت و نگذاشت همه آبان سر برود و کوزه توهی شود اما حالا کوزه قلقل از آب توهی می شد و کسی نبود آن را بردارد. نه سفورایی بود و نه سلطانی و نه حتی کوزهی که روی زمین قلتیده باشد. با این حال صدای قلقل آبی که از حلق کوزه بیرون میریخت آنقدر در گوش اسمایل پیچید که دیگر آبی نمان تا صدای قلقل در میان باشد. اولین روز سال بود آن روز و هوا روشن و آفتابی. در میان خطوط چهره صفورا اندکی شادی دیده می‌شد. راهش را کچ کرد تا پایش به کوزه خالی خیالی نگیرد و آن را بشکند. به در خانه آنا که رسید به اطراف نگاه کرد درختها و دیوارها و پشته های و حیمه همه تبدیل به اشباح شناور شده بودند در زد شقیقه هایش میکوبید گروپ گروپ دلش هم باز هم در زد یک بار دیگر باز هم تا اینکه از آن سوی در صدای دوست داشتنی آنا را شنید کی هستی اومدم؟ نگفت کیست به گمان خود احتیاط کرد کلون به نرمی کشیده شد و در بر روی پاشنه چرخید و آنا سرش را بیرون آورد منم آنها نخوابیده بودی که توی اسماییل بیا تو بیا تو رفت تو آنا در را پشت سرش بست بعد دو دستش را مثل دوبال گشود و انداخت دور گردنش و صورتش را بوسید گفتم دیگه نمیبینمت گفتم میمیرم اما چشمم به این در میمونه یادگار پدرم پشت بان ایلم هر دو به طرف اتاق رفتند. فتیله ی لمپ افتاده بود پایین و تنها میتوانست اطراف خود را روشن کند. آنها آن را بالا کشید. اتاق روشن شد. صورت آنها تکیده بود و رنگ به رو نداشت. آنها مریض شدی؟ کاش مریض میشدم. زنده شدم. به نظرش اتاق همان اتاق نبود. مفرشها ها، های قالی و رخت ها و گونیها به هم ریخته بود. اینجا چه خبر شده؟ لابود آره امنیه ها، از کجا فهمیدی؟ از روزنه اتاق عزیز همه چیزو میدیدم و میشنیدم اتاق عزیز؟ اون بدبخت رو هم اونجا کشتن بله اونجا کشتن تو؟ تو بودی؟ دیدی؟ آره بودم، دیدم، کار خودش بود دیدی که به گردن من مینداخت من کی؟ سرخان، سرخان شنیدی که چه شیونی به پا میکرد خودش با بیل زد من اونجا بودم، با این دو چشمم دیدم. تو رو ندید؟ نه، میدید که امنیه ها رو گراس می آورد بالا سرم. اونا رو دنبال من نمیری خونهی مردم. ببین اسماعیل، نور چشمم، تو نماز میخونی ها؟ یه خدا اینا کرده؟ آنا یعنی من؟ نه، نه, نه، نور چشمم. میخوام بگم تو با سرخان و قریکشی اونا فرق داری. میخوای بوزو بگیرن دست بذارم رو قرآن تا باور کنی؟ من از اولم باور کرده بودم. فقط میخواستم دلم آروم بگیره. هر دو کمی مکس کردند بعد اسمایل پرسید از سونا چه خبر؟ با این بدبختی چی کار میکنه؟ چی میخواد بکنه؟ حرف نمیزنه هرچی ازش میپرسی جواب نمیده مثل اینکه لال شده میترسم اونم فکر کنه من قاتل مادرشم خودت جای اون باشی چی فکر میکنی؟ حق داره تا به حالا که چیزی نگفته از همه فرار میکنه سپس پرسید؟ حتما خسته و گرست نهی باید حتما ببینمش برم برات نون بیارم باید باش حرف بزنم من مادرشو نکشتم نه اول ببینم زخم شونت چطوره اسمایل نیمتنهش را در آورد بعد لباسهای زیرش را دوزانو نشست آنا به زخمش نگاه کرد و گفت خوبه گرفته به خاطر مرهمه دست سونا درد نکنه تفلک خیلی نگران بود. آب و غذا به من میداد. آنا سر بلند کرد و گفت: لباسات بو میده. الان آب گرم میذارم خودتو بشور. دور شد. با سفره نان و کاسه ای ماست درگشت تا بخوری آب گرم شده. میمتننش را رو انداخت روی دوش و نشست کنار سفره. هنوز لغمه اول را بر بود که از توی تاریکی دو نقطه درخشان نزدیکش شد. گربه خودش را به سفره رساند مثل همیشه دمش را بالا گرفته بود. اسماعیل تکنانی را توی کاسه ماست فرو برد و کنار تخت سنگ تراش خورده ای که دیرک رویش استوار مانده بود گذاشت. گربه آن طرف دوید غذایش را بو کشید اما پیش از خوردن سرش را بلند کرد و چند لحظه نگاهش را به چشمهای های دوخت. چیزی در آن نگاه بود که او را از خوردن بازداشت گربه با نگاهش مهربانیش را به او نشان داد. هر دو مشغول خوردن شدند فتیله لمپا خود به خود بالا رفته بود و دود میکرد. پیچ چراغ را چرخاند و فتیله را پایین کشید. اتاق کمی تاریک شد. غذایش را که خورد باز هم نگاهش را گرداگرد اتاق گرداند. چینش چندین ساله وسایل اتاق در هم ریخته بود. فرشها، گلیم ها و جاجیم ها،, خواب ها و ظرف و ظروف که همه یادگار گذشتگان بودند به نحف غمنگیزی روی زمین پراکنده شده بودند و اوبههت و تشخص تاریخیشان در هم شکسته بود. آنا آمد، فتیله چرا خیلی پایینه، ببرش بالا چشم اذیت میشه بالا بود، داشت دود می کرد، خودم کشیدمش پایین، اینجوری دیگه گرگونت برم، و خودش آرام فتیله را بالا کشید و شوهای نور را گسترد، خیلی خوب، حالا بلند شو برو طویله یه سطل آب گرم برات گذاشتم، یه سطل آب سرد، کاسه و کیسه و لیف و سابونم هست، آب سرد و گرم و قشنگ با هم قاطی کن. اول بریز بدنت خیس بشه اون وقت خوب کیسه بکش از بالا به پایین بالای کمرت یادت نره بعدم صابون بزن با سلیقه بشور که صابون نمونه و سفیدک نزنه حالا پاشو فقط یادت باشه روی زخم نکیسه بکشی نلیف بذار به حال خودش باشه مرهم خوبش میکنه اسماعیل بلند شد و به طرف طویل رفت فانوس از دیره که طویل آویخته شده بود گاو با چشمای بسته نوشخوار میکرد خیالش راحت شد که به اون نگاه نمیکند. لباسهایش را یکی یکی و روی هم ریخت. آب سطل ها را امتحان کرد یکی می سوزند اما آن یکی سرد بود به همان ترتیبی که آنا سفارش کرده بود با مخلوط کردن آب گرم و سرد بدنش را خیساند. از گاو خجالت میکشید میترسید با صدای آب چشم باز و او را لخت ببیند اما گاو گویا خواب چمنزارها را میدید و با همان چشم های بسته آهسته شخار میکرد و صدای سایش دندانهایش روی علوف شنیده میشد آخرین بار در آب گرم خودش را گربه شور کرده بود و پس از آن در سیلاب گلالود قوته خورده بود و با صعود به قله از فرط عرق های زیرش خیز شده بود و بو گرفته بود وقتی لباس تمیز پوشید و خواست از طویل بیرون بیاید باز هم به گاو نگاه کرد به نظرش رسید کمی از پلک گاو بالا کشیده و زیر چشمی نگاهش می کند. مکس کرد طاقت نیاورد و آهسته به طرفش رفت حیوان به حال خودش بود دستهایش را جلوی چشم گاو به این طرف آن طرف تکان داد هیچ تغییری در حالت حیوان پیش نیامد. حتی آهنگ نشخارش هم عوض نشد. فهمید که گاو با پلک نیمه باز خوابیده است. آنا رختخوابش را پهن کرده بود و یک لیوان چای توی سینی برایش حاضر کرده بود. روی رختخواب نشست و چایش را خورد. زحمت خونریزی نداشت؟ نه نداشت. من خوابیدم. بخواب. لاهاف را کشید رویش و چشمهایش را بست. وقتی می‌خواست به خواب برود احساس کرد گوشه ی لحاف سنگین شده است سرش را بلند کرد و نگاه کرد گربه دور خود چمبر زده و همونجا خوابیده بود پاهایش را کنار کشید تا گربه راحت بخوابد خودش هم خوابید چند روز بعد جای زخم می‌خارید خیلی دلش میخواست آن را بخاراند حتی اگر شده از روی لباس اما آنها مخالف بود دست نزن خارش نشونه خوب شدن زخم زخمت خارید یعنی داره خوب میشه دست بزنی بازم سر باز می کنه. آنا مایل به ماندن اسماعیل نبود. بارها از او خواسته بود تا شبانه بنفش دره را ترک کند و خودش را به تهران برساند. اما او میل رفتن نداشت. ترجیح میداد خود را در آن چهار دیواری زندانی کند، اما از بنفش دره بیرون نرود نگران سونا و ملا بود. احساس می کرد هر دو را دوست دارد و نمیتواند در این شرایط ترکشان کند. آنا می کسی از ملا خبر ندارد، نمیدانند او را به کجا بردند، اما سرخون اسبش را آورده و به آخر طویله خودش بسته، هر وقت خواست سوار شود، نتوانسته، اسب رکاب نداده، نه به او و نه به استوار که حسرت به دل بود. آنا می حالا اسب ملا شده مونس سنا، ساعتها پیش هم میمانند حیوان عشق می ریزد و می تا او نوازشش کند و به یالهای بلند نقره یش دست بکشد، اسمایل به این نقل ها گوش میداد و پیش خود آن صحنه ها را تجسم می کرد. دختری که لب فروست و, و حرف نمی زند و اسبی که به کسی سواری نمیدهد و تنها تسلیم دست های آن دختر ما زده است و پیش او اشک می ریزد. نه روزها آفتابی میشد و نه شبها محتابی. مانده بود در آن خانه هاشیه ی روستای بنفش در تا ببیند چه پیش میآید. بیشتر گوشش به رادیو چهار موج آنا بود که مرتب ایستگاه عوض می کرد. شبها صداهای بیشتری میشنید، بلند و کوتاه، صاف و خشدار، با پارازیت و بی پارازیت. به دنبال ایستگاهی میگشت که فارسی حرف بزند. از مسکو تا برلین، از بغداد تا واشنگتن، تلاوی و لندن. روزها بیشتر روی ایستگاه تهران و تبریز می‌ایستاد. آنقدر گوش میداد تا خسته میشد. آن وقت میرفت سر به سر گربه و گاف می‌گذاشت و با آنها سرش را گرم میکرد. با شنیدن صدای در به سمت طویله میدوید و خودش را گوشه کمنور پشت بافههای علف پنهان میکرد روز و شبش را اینطوری میگذرند